شنوتو با افتخار تقدیم می کند کتاب شب حضور شما همدهان علوشگی برنامه کتاب شم با بازخانی دومین قسمت رومان عزشمند بی اثر نویسنده بزرگ فرانسه ویکتور روگو در خدمت شمایی شب قبل گفتیم که ژان جان، ژولیده و خاکالود و توبر بردوش وارد شهر دینیه شد و هیچکس به او غذا و سرپناهی نداد تا اینکه او به نزد کشیش شهر رفت و کشیش به بی پناه داد جانوالجان ظروف نقره کشیش را دزدید و هنگامی که پلیس او را دستگیر کرد و نزد کشیش آورد، کشیش به ماموران گفت که اینها را خود به جانوالجان هدیه داده است. همچنین از سرنوشت فانتین شنیدیم که در دهکده منفرمی به مسافرخانه ای رسید که خانم و آقای به نام تناردیه آن را میگردندند. او دختر 3 ساله‌اش کوزت را در ازای مبلغی ماهانه برای نگهداری به آنها سپرد. آدمی به بود و با وجود بد با کوزت دائم از مادر کوزت پول میخواست. از شما دعوت میکنم به دنباله ماجر توجه کنیم. وقتی فانتین پس از دوازده سال به مونترو سرمر برگشت، شهر زادگاهش از نظر صنعتی خیلی عوض شده بود. سه سال قبل از آمدن او، مردی به نام پدر مادلن با یک ابتکار، یعنی تغییر مواد خام تولید کهربا و شیشه مات، انقلابی در این صنعت ایجاد کرده و هم خود ثروتمند شده بود و هم برای بسیاری کار با دستموزای خوب ایجاد و وضع مردم شهر خوب شده بود. میگفتند این مرد ناشناس یک روز غروب وردوش وارد شهر شده بود و با به خطر انداختن جانش بچه های فرمانده پلیس را از ساختمان فرمانداری که در آتش میسوخت نجات داده بود و همین دلیل دیگر کسی نپرسیده بود کیست تناسرگرمی آقای مادلن 50 ساله مطالعه بود در کارخانهش برای همه آدم‌های نیازمند کار داشت و فقط از همه درستکاری میخواست او با اینکه 600 هزار فرانک در بانک لافیت پاریس داشت اما یک میلیون فرانک برای مردم شهر خرج کرده بود و برای مردم نیازمند بیمارستان، نوانخانه و داروخانه راه انداخته بود. در سالهای 1819 و 1820 شاه دو بار به دلیل خدمات او به مردم منطقه او را به عنوان شهردار مونتروی سورمر منصوب کرد اما او نپذیرفت. ولی بلاخره به خاطر اصرار و اعتراض مردم شهردار شد با وجود این همچنان زندگی ساده ای داشت و به نیازمندان خدمت میکرد اما در این شهر فقط یک نفر از او خوشش نمی و او بازرس پلیس جاور بود که به مادلن مشکوک بود و فکر میکرد او محکوم سابق ژان والجان است جاور از خانواده کولی بود که پدرش نیز خود یکی از محکومان بود وی در اوایل مدتی در زندان‌های جنوب فرانسه خدمت کرد و آجودان نگهبانان زندانی بود که ژان والژان چند بار در آن به زندان محکوم شده بود. زندگی او در بیداری و نگهبانی خلاصه شده بود. موقع جدی بودن تبدیل به سگ نگهبان میشد و وای به روز خلافکاری که به دستش میافتاد حتی پدرش را هم به زندان میانداخت. برای همین همه خلافکارها از شنیدن نامش وحشت میکردند. جاور یک روز شکش نسبت به پدر مادرن بیشتر شد آن روز پیرمردی به نام بابا فوشلووان زیر گاری چپ شدهاش گیر کرده بود و ناله میکرد جاور و مادرن به فاصله کمی به آنجا رسیده بودند کسی دنبال اهرام رفت اما تا چند دقیقه بعد دنده های پیرمرد خورد می شد اگر گاری و اسب را بد جوری بلند میکردند پیرمرد میمرد کسی باید با پشتش گاری را بلند میکرد مادلن میخواست چندین سکه طلا به کسی برای اینکه این کار را بکند بدهد اما کسی توان این کار را نداشت بالاخره هم خود مادلن زیرگاری رفت و فشلووان را نجات داد. سپس اسب وگاری او را به مبلغ بالایی خرید اما چون دیگر کار سنگین از فشلووان بر نمی آمد او را پس از معالجه برای کار به کلیسایی در پاریس معرفی کرد جاور برای شکش به مادلن دلیل داشت فقط جانان والژان زور بلند کردن و آنگاری را داشت. فانتین در کارگاه زنانه کارخانه مادن کار می کرد و از ترسش به کسی نگفته بود بچه دارد. اما چون سواد نداشت زنهای کارگاه فهمیدند برای او نامه های می رسد و به کسی نامه می نویسد. از طریق نامه نویس نیز بالاخره فهمیدند او بچه دارد و یک روز صبح سرپرست کارگاه او را به جرم بدکاره بودن اخراج کرد. فانتین از آن روز کینه مادن شهردار را به دل گرفت. بابت کرایه و اساسیه خانهش بده کار بود و نمی توانست به شهر دیگری برود اساسیهش را فروخت ولی باز هم بده بود خاص خدمتکار شود اما کسی خدمتکار نمی برای سربازان لباس می دوخت و پول کمی می دیگر پول ماهانه کزت را مرتب نمی یاد گرفت چطور مثل فقرا سرفجوی کند و بدون روشن کردن شم از روشنایی خانه همسایه استفاده کند ابتدا خجالت میکشید با لباسایی که به تنداش به خیابان برود ولی بعد یاد گرفت فکر کند که کسی او را نمی بیند زیاد شده بود تنادیه هم دائم نامه میفرستاد و پول میخواست یک بار که نوشته بود برای لباس زمستان کوزت پول میخواهد فانتین به سلمانی رفت و موهایش را فروخت بار دیگر تناردیه نوشته بود کوزت مریض شده و پول برای خریدن دارو میخواهد فانتین دو دندان جلواش را نیز به دندانسازی که قبلا گفته بود آنها را میخرد فروخت و پول را فرستاد اما کوزت مریض نبود فانتین برای اینکه خود را در آینه نبیند آینهاش را دور انداخت طلبکارها راهایش نمیکردند و خیاط هم دستمزدش را کم کرده بود تناردی هم برایش نوشت اگر برایش 100 فرانک بابت بدهکاری نفرستد کوزت را در سرما از خانه بیرون می کند. فانتین فکر کرد صد فرانک؟ به من روزی چند سو پول چندی بعد، یک بار که جلوی کافی قدم میزد، جوان خوشگذرانی برای شوخی با او مشتی برف در نباسش انداخت. فانتین مثل ماده پلنگی خشمگین ناخنهایش را در صورت مرد فرو کرد و به او ناسزا گفت. جمعیت جمع شد. فانتین با دیدن جاور رنگش پرید و زبانش بند آمد. جاور با عصبانیت فانتین را به تالار اداره پلیس برد. سپس او را به شش ماه زندان محکوم کرد و دستور داد او را به زندان ببرند. فانتین لرزید و به خاطر کوزت به التماس افتاد. جابر گفت بسته دیگه حتی خود خدا هم نمیتونه برات کاری بکنه. قبل از اینکه سربازها فانتین را ببرند مادلن که کمی قبل بی وارد تالار شده بود گفت دست نگه دارند. جابر گفت چی گفتید آقای شهردار؟ فانتین جلو رفت و گفت تو سک باعث همه اینا هستی. به خاطر حرفای چند زن مرا از کارخونه بیرون کردی و به صورت مادلن توفنداختی اما شهردار گفت این زن را آزاد کنید ژابل گفت نمیشه شهردار گفت که خود او شاهد ماجرا بوده و فانتین بیگناه است و چون موضوع در صلاحیت پلیس شهرداری است فانتین باید آزاد شود ژاویر با عصبانیت تعظیم کرد و رفت جانواژن به فانتین گفت چرا وقتی شما را از کارخونه بیرون کردن پیش من نیومدید؟ فانتین به گریه افتاد و از ضعف و بیماری از حال رفت. به دستور آقای مادلن، فانتین تحت درمان قرار گرفت و خواهری روحانی پرستار شبانه روز او شد. مادلن درباره فانتین تحقیق کرد و همه چیز را فهمید. برای تناردیه نیز به جای 120 فرانک بدهکاری فانتین، 300 فرانک فرستاد و برای آنها نوشت مادر کوچکت مریض است و او را فوری بفرستد. اما تناردیه صورت حساب 500 فرانکی برای مادلن فرستاد مادلن 600 فرانک دیگر برای تناردیه فرستاد اما تناردیه که تمعاش زیاد شده بود باز کوزت را نفرستاد حال فانتین روز به روز بدتر میشد و برای دیدن دخترش بیتابی میکرد مادلن تصمیم گرفت خود برود و کوزت را بیاورد به همین دلیل نامهای به امضای فانتین گرفت تا کزت را تحویل او بدهد اما به خاطر اتفاقی نتوانست برود. روز بعد بازرس جاور به دفتر مادنه آمد و از شهردار خواست دستور دهد او را اخراج کنند. و گفت من جرمی نسبت به مقام شهردار مرتکب شدم. در اثر عصبانیت به مقامات گزارش داده بودم که شما همون محکوم فراری جانبال جان هستید. اما رئیس پلیس برام نوشت که دیوونه شدم چون جانبال جان به خاطر دزدیدن سیب از باقی دستگیر شده. منم رفتم و اونو دیدم و با اینکه مرد ادعا میکرد شان ماتیوس او رو شناختم. زنن گروه فردا هم در دادگاهی در آراس محاکمه میشه. برای همین قراره برای شهادت در دادگاه فردا به آراس برم. قراره سه نفر از همبندهای جانوال جان هم که او رو شناختن در اونجا شهادت بدن. مادلن میخواست جاگر را مرخص کنند. اما در برابر اصرار او برای مجازات قول داد به موضوع رسیدگی کنن. www.shenoto.com اصر مادلن بهترین کالسکر را کرایه گرد تا صبح زود به دادگاه آراس که در 20 فرسقی آنجا بود برود و خود را معرفی کند تا مردی را که به ناحق جان بالجان معرفی شده بود آزاد کند. اما شب تا صبح خوابش نبرد تا صبح مردد و با وجدانش در کشمکش بود. فکر میکرد اگر خود را معرفی کند کارخانه و خدماتی که او به فقرای شهر میدهد چه خواهد شد؟ و آیا این همه فعالیت خیر او مهمتر از نجات جان یک انسان نیست؟ فانتین و کوزت چه می شدند؟ اما بالاخره سپیده صبح سوار بر کالسکه تیز رو با تمام سرعت به طرف آراس رفت با وجود این ساعت هشت شب به آراس رسید فکر کرد دادگاه تمام شده است اما به محل دادگاه که رسید فهمید هنوز دادگاه به خاطر طول کشیدن دادگاه قبلی ادامه دارد در دادگاه جا نبود اما وقتی عنوانش را گفت او را با احترام به جای مخصوص مقامات در پشت سر قاضی راهنمایی کردند. دادگاه داشت شانماتیو را نه فقط به خاطر سیب دزدی بلکه به خاطر سرقت مسلحانه در هشت سال پیش از پسرکی به نام پتیژروه و دزدی از خانه اسقف محاکمه میکرد و ممکن بود حتی او را به اعدام محکوم کند. مادلین یا همان جان جان از دادگاه اجازه گرفت و گفت که او جان جان واقعی است. اما همه فکر کردند شهردار مادلین دیوانه شده است. این بود که ژان جان خطاب به سهمبند سابقش در زندان نشانی هایی را داد که جز جانوال جان و آنها کسی نمی دانست. بعد هم به دادگاه گفت چون چند کاری را باید انجام دهد می رود اما آقای دادستان جای او را می داند و می تواند دستور دهند او را دستگیر کنند. شانماتیو آزاد شد اما روز بعد وقتی جانوال جان به مونترو سرمر برگشت و بالای سر تخت فانتین که منتظر کزت بود رفت بازرس جاوِر در حالی که از خشم می درزید برای دستگیریش وارد اتاق شد. فانتین از دیدن جاوِر رنگش پرید. داد زد: «آقای شهردار نجاتم بدید.» مادن گفت: «راحت باشید. او به خاطر شما اینجا آمده.» جاوِر گفت: «خفه شو زنی که بی‌حیا. این یه دزد نه شهردار.» ژانوال جان خواست از جاوِر سه روز مُلت بگیرد. تا برود و دختر فانتین را پیش او بیاورد اما جاور به او خندید و مسخرهاش کرد فانتین که این صحنه را دید شوکه شد و جان داد سپس جاور ژان والجان را به زندان شهر برد با اینکه دستگیری مادن ابتدا در شهر سر و صدا بپا کرد اما مردم خیلی زود موضوع را فراموش کردند ژان والجان شبیه زندان فرار کرد و به خانه اش برگشت نامهای به کشیش نوشت تا پس از پرداخت بدهی هایش و تدفین فانتین بقیه امبالش را به فغرا بدهد سپس همان شب به طرف پاریس حرکت کرد در پاریس نیز به بانک لافیت رفت و 600 هزار فرانک خود را گرفت و جایی پنهان کرد اما انگامی که میخواست با کالسکه به دهکده منفر برود و کزت را از تناردیه بگیرد دوباره دستگیر شد این بار او را به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم کردند و به زندان طولان بردم دوستان عزیز خسته نباشید، امشب دومین بخش بازخانی رمان بینوایان نوشته ویکتور هاگو را شنیدید. خدا نگه داریم. بخش بعدی این پادکست باشید. www.shenoto.com